شکایت. یکی از رفیقان شکایت روزگار نامساعد به نزد من آورد که کفاف اندک دارم و ایار بسیار و طاقت بار فاقه نمی آرم و بارها در دلم آمد که به اقلیمی دیگر نقل کنم تا در هر آن صورت که زندگانی کرد شود کسی را بر نیک و بد من اطلاع نباشد. بس گرسنه خفت و کس ندانه است که کیست. بس جان به لب آمد که برو کس نگریست. باز از شماعتت اعدا برندیشم که به تحن در قفای من بخندند و سعی مرا در حق عیال بر عدم مربت حمل کنند و گوگند، ما وین آن بی همیت را که هرگز نخواهد دید روی نیکبختی که آسانی گزیند خیشتن را زن و فرزند بگذارد به سختی و در علم محاسبت چون که معلوم است چیزی دانم و اگر بجا شما جهتی معین شود که موجب جمعیت خاطر باشد، بقیت عمر از اخته شکر آن نعمت برون آمدن، نتوانم. گفتم، عمل پادشاه ای برادر دو طرف دارد، امید و بیم، یعنی امید نان و بیم جان، و خلاف رأی خردمندان باشد، بدان امید در این بیم افتادن کس نیاید به خانه درویش که خراج زمین و باغ بده یا به تشویش و قصه راضی باش یا جگربند پیش زاغ بنه گفت این مناسب حال من نگفتی و جواب سوال من نیاوردی نشنیده ای که هر که خیانت ورزد پشتش از حساب بلرزد. راستی موجب رضای خداست. کس ندیدم که گم شد از ره راست. و حکما گوگند چار کس از چهار کس به جان برنجند. حرامی از سلطان و دوست از پاسبان و فاسق از قماز و روسبی بی از محتسب. بان را که حساب پاک است، از محاسبت چه باک است. مکن فراخ روی در عمل، اگر خواهی که وقت رفع تو باشد، مجال دشمن تنگ. تو پاک باش و مدار از کسی برادر باک. زنند جامع ناپاک، گازران برسنگ گفتم حکایت آن روباه مناسب حال توست که دیدندش گریزان و بیخیشتن افتان و خیزان کسی گفتش چه آفت است که موجب چندین مخافت است گفتا شنیدم که شطور را به سخره میگیرند گفت ای صفی شطر را با تو چه مناسبت است و تو را به دو چه مشابهت؟ گفت خاموش که اگر حسودان به قرض گویند شطر است و گرفتار آیم را قم تخلیس من دارد تا تفتیش حال من کند و تا تریاق از عراق آورده شود مارگزیده مرده بود. تو همچنین فضل است و دیانت و تقوا و امانت اما متعنتان در کمینند و مدعیان گوش نشین. اگر آنچه چه حسن سیرت توست به خلاف آن تقریر کنند و در معرض خطاب پادشاه افتی در آن حالت کرا مجال مقالت باشد پس مسلحتان بینم که ملک قناعت را حراست کنی و ترک ریاست گوگی به دریا در منافع بیشمار است و گرخواهی سلامت بر کنار است رفیق این سخن بشنید و به هم برآمد و روگ از من در هم کشید و سخنهای رنگ شامیز گفتن گرفت که این چه عقل و کفایت است و فهم و درایت، قول حکما درست آمد که گفتند دوستان به زندان بکار آیند، که بر سفره همه دشمنان دوست نمایند، دوست مشماران که در نعمت زند، لاف یاری و برادر خاندگی. دوست آن دانم که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی دیدم که متغیر می شود و نصیحت به قرض میشنود به نزدیک صاحب دیوان رفتم به سابقه معرفتی که در میان ما بود و صورت حالش بیان کردم و اهلیت و استحقاقش بگفتم تا به کاری مختصرش نسب کردم چندی بر این بر آمد، لطف را بدیدند و حسن تدبیرش را بپسندیدند و کارش از آن درگذشت و به مرتبتی بالاتر از آن متمکن شد. همچنین نجم سعادتش در ترقی بود تا به اوج ارادت برسید و مقرب حضرت، و مشار الی و معتمد علی گشت بر سلامت حالش شادمانی کردم و گفتم زکار بسته میندیش و دل شکسته مدار که آب چشمه حیوان درون تاریکی است الا لا یجعرن فل بری فلرحمان التاف خفیه منشین ترش از گردش ایام که سبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد در آن غربت مرا با طایفه یاران اتفاق سفر افتاد چون از زیارت مکه باز آمدم دو منزلم استقبال کرد ظاهر حالش را دیدم پریشان و در حیعت درویشان گفتم چه حالت است؟ گفت آنچنان که تو گفتی طایفه حسد بردند و به خیانتم منصوب کردند و ملک دام ملکهو در کشف حقیقت آن استسخان نفرمود و یاران قدیم و دوستان همیم از کلمه حق خاموش شدند و صحبت دیرین فراموش کردند. نبینی که پیش خداوند جا، نیایش کنن دست بر, بر نهند، اگر روزگارش در آردز پای، همه آدمش پای بر سر نهند. فلجمله به انواع عقوبت گرفتار بودم، تا در این هفته که مجدی سلامت حجاج برسید، از بند گرانم خلاص کرد. و ملک موروسم خاص گفتم، آن نوبت اشارت من قبولت نیفتاد، که گفتم، عمل پادشاهان چون سفر دریاست، خطرناک و سودمند، یا گنج برگیری، یا در تلز بمیری، یا زرب هر دو دست کند در کنار، یا موج روزی افکندش مرده بر کنار. مسلحت ندیدم از این بیش درونش به ملامت خراشیدن و نمک پاشیدن. به دین کلمه اختصار کردیم. ندانستی که بینی بند برپای چو در گوشت نیامد پند مردم؟ دگر ره چون نداری طاقت نیش؟ مکن انگوش در سوراخ کژدم